بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات اسلامي ممتع تقديم میکند اے برادر مسلمانم اے برادر مسلمانم اے برادر مسلمانم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد معلم البشرية المرسل إلى كافة الناس أجمعين وعلى آله و اصحابه الراشدین و بعد ای برادر مسلمانم خوش آمدید و خوش باشید هر جایی که باشید و هستید و در هر جایی که بود و باش دارید خوش آمدید برادر ما در اسلام ندر نجاد و نسب و ندر رنگ و زبان خوش آمدید برادر ما در دین آخرین پیغمبران محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید برادر ما در دین که کامیابی و محکم شدن آن را در زمین خداون برای خدا برا ما وعده داده تا اینکه آن وعده برسد و خداون با وعده خود خلاف نمی کند ای برادر مسلمانم بیای لحظات یکی از بهترین صفحات تاریخ را ورق بزنیم سترهای را متالعه نمائیم که از آن بوی اخلاص را می جوییم و از خلال مطالعه آن نور توحید و سباد هویدار می شود که عظیمت و اراده آن محید کوها را و میده می و سختها را هموار می کند و رنگهای قلمهای آن وقت از خون شهدائی بود که در روز قیامت از آن با مثل مسک خوشبوی می آید و نوشتن آن سطور توسط, دست، توسط دستهای پر نور و قلبهای سلیم صورت می مگر چی کسی مدافع این دین بود و چه کسی رهبری و پیشوایی آن دین را به عهده داشت آن شخص که مسیر تاریخ را تغییر داد چی نام داشت قسم است که این قصه شیرین و دلچسب باشد که گوش ها را در انتظار شنیدن که گوش ها در انتظار شنیدن آن می باشد بیایید قصه را از اول سرآغاز کنیم و با سرعت صفحات و احداث آن را ورق زده از آن کمی بیاموزیم در کعبه شریفه شر از سی سد بود در داخل مسجد حرام وجود داشت تهارت مسجد را ناپاک ساخته، مانه عبادت خداوند می شدن به آن بودها قربانی ها تقدیم می کردن. نظرها را به خود گرفته و به آن وفا می نمودن. مردم به آنها اطاعت و دوستی کامل داشتند. به هر آن کسی که با بودها به بدی و ایساعت دست می, حلاکت می بود حلاکت میبود. و در شب تاریخ و تیره تاریخ خواسته خداوند شد که عبدالله پسر عبد المطلب قریشی هاشمی با آمنه دختر وحب عروسی کند و از این عروسی بزرگترین مرد تاریخ که بشریت را مجده نجات میداد به دنیا آمد آمنه وقتی که حامل بود نوری را مشاهده می کرد که از رحمتش بی از رحمش بیرون شده قصرهای شام را روشن میسازد. این مولود در رحم مادر بود که پدرش وفات نمود چند ما بعد عبد المطلب مجدهی ولادت پسر خود را میدهد که نامش محمد است شاعر میگوید این پسر رحنمای همه کائنات را این پسر رحنما همه کائنات را روشن ساخته و حال و زمان را ابتسامت و تمجید بخشید و این شیر خوردن خود را در قریه بني سعد نزد بیبی بی حلیمه تکمیل نموده وجهت تربیه بخانه مادر خود به پرستی عبد المطلب پدر کلان و ایباز گشت و خواست خداوند بود که در عمر شش سالگی مادرش در راه مدینه در منطقه ابوا وفات کند و این طفل یتیم پدر مادر شد این طفل یتیم و پدر مادر شد دو سال راه همراه عبد پدر کلان خود گذشتانده که او هم با مثل پدر و مادرش در سن هشت سالگی از این تفل دنیا را ودا کرد و عبد المطلب و برای پسر خود ابو طالب کرده بود که بعد از مرگش برادر خود را به صورت درست تربیه و پرورش دهد. و فعلا ابو طالب این تفل را به منزلت شیرین ترین پسران خود تربیت می داد و بستر خواب بدون این تفل نمی رفت و بدون این تفل از خانه بیرون نمی شد تحت سرپرستی کاکای خود این طفل عظیم پرورش و تربیه گرفته و جوان و بزرگ شد. قرائش لقب امین را به این طفل بخشید و هم قبائل در نهادن حجر اسود به کنج کعبه شریفه به مبارک و علی سلام راضی شدن. عورتش را هیچ کس ندیده بود و هرگز به بوت سجده نکرده بود. هنگامی که خدیجه دختر خویلد از امانتداری و محافظکاری او علیه سلام خبر شد، مناسب دید که تجارت مالش را احددار شود و محمد علیه السلام به این پشنهاد موافقه نمود خدیجه غلام خود را که میسره نام داشت در این سفر همراه محمد علیه السلام فرستاد و در طول را میسره مشاهده میکرد که در وقت گرمی زیاد دو ملک بر محمد علیه السلام سایه میکنند و در مال تجارتی خدیجه رضی الله عنها چندین مراتب فایده زیاده شد که غیر او این فایده را حاصل نکرده بود و خدیجه قسمت از فایده را به محمد علیه السلام داد و از وی علیه السلام خواهش کرد که عروسی هم کند محمد علیه السلام موافقه نمود و خدیجه رضی الله عنها اولین زوجات رسول علیه السلام بحساب میرود محمد علیه السلام عمر زیاد خود را نزد وی گذاشتند. و همین تور ماها و سالها گزشت تا اینکه محمد علیه السلام بچل سالگی نزدیک شد یهودی ها و فالبینان عرب می و گمان داشتن این پیغمبر آخر زمان از آنها باشد و محمد علیه سلام عادت داشت که در سال یک بار در سال یک ماه خاطر عبادت خداوند غار حرا در کوهی که نزدیک به مکه می رفت در خلوت و تنهایی به عبادت پروردگار خود مشغول می شد هنگامی که نزدیک به عمر چل سالگی شد خوابهای می دید که آن همه به مثل صبح صادق تحقق می‌گردید و میلاد فجر جدید نزدیک‌تر میشد و جلو و جلوه می‌کرد وقت مصروف عبادت در غار, غار حرا بود مخلوقی را مشاهده نمود که قبلا مثلش را ندیده بود آری آن جبرائیل علیه السلام بود و به شکل حقیقی که خداوند او را خلق کرده است ظاهر شد و در این حال محمد علی السلام ترسید و اورا خوف پیچاند و جبرئیل علیه السلام برایش گفت بخوان گفت من خواننده نیستم گفت پس محمد علی السلام گفت پس مرا جبرئیل گرفت و پوشانید و فشارم داد پس گذشتاندم پس دوباره گذاشتم گفت بخوان گفت من خواننده نیستم جبرائیل بارد و مرا گرفته پوشانید و فشارم داد و گفت بخوان گفتم من خواننده نیستم بارسیم هم من را جبرائیل علیه السلام گرفته پوشانید و فشارم داد و گفت اقرا باسم ربک الذی خلق خلقا سانا من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم معنا ترجماییان بخوان به برکت نام پروردگار خود که آفرید آفرید آدم را از خون بسته بخوان خوان و پروردگار تو بزرگوارتر است آنکه علم آموخت به وسیله قلم آموخت آدم را آنچی نمی‌داند و محمد علیه السلام به این آیات به سوی خانه نزد خدیجه رضی الله عنها در حالت بازگشت که همه وجودش میلرزید و گفت من را بپوشانید من را بپوشانید و وی عليه سلام را پوشاندند تا آن که ترس از وجودش بیرون شد پس از آن به خدیجه رضی الله عنها خطاب کرد ای خدیجه بر من چه حالت پیش شده و از قدسه خدیجه رضی الله عنه را و از قصه خدیجه رضی الله عنه را خبر سخت و گفت من بر خود بسیار ترسیدم خدیجه رضی الله گفت نخیر برای شما مجده خیر است قسم به خدا که خداوند شما را هرگز بی پرده نمی سازد و قسم به خدا است که شما همیشه از اقارب خود با خیر و از میپرسیدید در سخن گفتن همیشه راستگو هستید نو را کمک و بیچاره را همکاری میکنید و مهمان را تکریم و عزت کرده و کارهای نیک و حق معاونت مینمایید پس از این گفت و شنید هر دو نزد ورقه پسر نوفل که پسر کاکای خدیجه میشود رفتن و او در نصرانیت به عربی نویسنده بود و در جاهلیت نصرانی شده بود برایش خدیجه گفت ای کاکا از برادرزاده خود چیزی بشنوید ورقه برای محمد علیه السلام گفت ای برادر زاده چی می قصه را برایش کرد و رقه گفت این وحی است که به موسی علیه سلام نیز نازل شده بود افسوس که من زنده و با می بودم و هنگامی که قوم تو شما را از مکه کشید، از شما دفاع کردم. محمد علیه سلام گفت آیا قوم من مرا از مکه بیرون میکنند؟ و رقه گفت بله هران کسی که نزد خود به مثل آن که شما نزد خود دارید نیاورده مگر این که همراهی او دشمنی ها صورت گرفته است و از آن روز اگر در زندگیم ام می آمد من همراهی شما کمک و همکاری میکردم آری جبرئیل به محمد علیه السلام خطاب کرد که بخوان و این خطاب آغاز وحی به محمد علیه السلام بود شروع رسالت بود سرآغاز نجات بشریت از عبادت بودها و شرکیات بود و عبادت پاتشای حقیقی که باداش عبادت را میدهد شروع شد این راه پر استکالیف مشکلات و طولانی بود و طولانی را محمد علی السلام متحمل شد و بعد از آن هر مؤمنی با ثبات این دستور و این ندای ربانی جاویدان را استقبال میکرد اقرأ بسم ربک خلق خلق الانسان من علق بیخوان به برکت نامی پروردگاری خود محمد علیه السلام به دعوت اقارب خود آغاز کرد و اولین کسی که اذانها ایمان به دعوت محمد علیه السلام آورد خانمه او علیه السلام بود. پس اذان علی پسر کاکای محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و به همین ترتیب ابو بكر، بلال، عثمان، ابو عبيدة و عبد الرحمن پسر عوف و أرقم أبي رضي الله عنهم أجمعين با این دعوة إيمان سيصل سي سال دعوة عليه السلام بشكل بنهان وخفية جريان داشت تا وحي نازل شد و دعوة خضرع علنية إعلان کردن خداون مي فرماید فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين بس أشكار كن با فرمودم شوي وإعراس كن از مشركين محمد عليه السلام قرائش را به تپه صفا جمع کرد و با تپه استاده شده به آواز بلند و قوی برای خطاب کرد من شما را از عذاب دردناک حشداری میدهم همین بود که ابو لحب به محمد علیه السلام گفت حلاکت باشد بر شما به خاطر همین کار ما را در اینجا جمع کردید و سر آغاز جنگ ها از همین مقوله ابو لهب من بگرفت جنگ و مقابله بر علی دعوت محمد علیه سلام را قراش احتدار شد و سرکردگان جنگ ها ابو جهل عمرو بن هشام ابو لهب اطبا بسر و شیبا دو پسر ربیعه و دیگران بودند و مسلمانان را انوای از تعذیب نشاندند مانند بلال خباب و خانواده یاسر و محمد علیه السلام مسلمانان را به صبر و استقامت در راه خدا توصیه میکرد و هنگامی که از این حالت در ناکشان مشاهده میکرد میگفت ای خانواده یاسر صبر کنید برای شما جهنم وعده داده شده است. خباب میگوید وقت نزد رسول خدا علیه السلام آمدم که آن حضرت علیه السلام در سایه کعبه به دعا مشغول بود. گفتم یا پیغمبر خدا آیا برای ما دعا نمی‌کنی؟ پیامبر علیه السلام نشست و خصار مبارکش سرخ گشت و فرمود مردمان قبل از شما شانه های آهنی شانه می‌شدند و تنها استخوانشان باقی میمان مگر از دین خود تنازل نمی‌کردند. و یک اده مردم دیگری را بر نصف سرشان اره را گذاشته آنها را دو نصف اره کردن مگر آنها هم از دین خود منصرف نمی شدند. و به تحقیق این دین کامیاب و ظاهر می شود تا آن که یک راکب یعنی سوار از سنعا به حد غیر از خوف خدا دیگر از هیچ چیز نترسیده مطمئن سفر کند و از گرب برمهی خود خوف نداشته باشد و در سال پنجم دعوت محمد علیه السلام برای مسلمانان ناتوان اجازه هجرت به سرزمین حبشه را داد و در آن هجرت یازده مرد و 4 زن شرکت کردند و بدین خود به سوی حبشه مهاجر شدن و به دنبالشان گروپ دیگری که هشتات مرد و نزده زن بودن به نزد پاتشای حبشه حجرت نمودن. محمد علیه السلام صفت آن پاتشا را کرده بود که بر کسی نزد او ظلم نمی شود، و در آخرین وقت خود این پادشاه مسلمان شد و نامش نجاشی بود روز روز اذیت اهل مکه زد مسلمانان زیاد می شد. همان بود که محمد علیه السلام را با اصحابش قرش در یکی از کوچه های مکه محاصره کردن و این محاصره سه سال دوام داد و اصحاب مجبور به خوردن برگ درخت شدن حالت بسیار سخت بود و بعد از سی سال محاصره شکست و ابو طالب کاکای محمد علیه سلام که همین که همیش از برادرزاده خود دفاع میکرد وفات کرد و چند بعد خدیجه خانم پیغمبر علیه السلام مرد و این همه مصیبت های پی در پی رسول خدا را بسیار غمگین ساخت همین بود که محمد علیه سلام مکراتر گفته به طرف طائف سفر کرد و مردم طائف هم پیغمبر علیه السلام را ازیت کردن حتی اطفالشان محمد علیه السلام را بسنگ می تا آنکه پای مبارک خون شد. و پیغمبر علیه السلام را اهل طائف از آنجا بیرون کردن و به مکه بازگشت و رحله اسرا و میراج را از حرم مکی به مسجد اقصا و بعداً به آسمانها به امر خداوند انجام داد. همان بود که نماز از بالای هفتمین آسمان فرض شد. و محمد علی سلام این دستوری الهی را گرفته به زمین برگشت اذیت مردم مکه استمران را داشت که با مردم مؤمن مدینه بیعت اقبای اول و اقبای دوم در مکه به خاطر دفاع از دعوت انجام یافت و اهل مکه رنج و آزار و اذیت را بر مسلمانان می و بالاخره اجتماعی بزرگی را تشکیل دادن که محمد علیه السلام را به قتل برسانند و از هر قبیله جوانی را اختیار نمودن تا خون محمد علیه السلام را در بین قبیله ها تقسیم کردند تا آنکه انتقام گرفتن نتوانند و از این که حالت محمد علیه السلام و اصحابش به این اندازه ذیق شده بود در فکر ایجاد جای دیگری به خاطر پیشبرد دعوت شدن، تا آنکه عبادت خداوند یکتا را که شریک بر خود ندارد و به صورت درست و دور از بندش و اذیت ادا نمایند همان بود که خداوند به پیغمبر خود علیه السلام به یک مرحله جدید دعوت امر هجرت به سوی مدینه را داد و محمد علیه سلام با ابو بکر رضی الله عنه به مدینه هجرت کردن و قرائش تحرکات پیغمبر علیه السلام را تعقیب میکردن و جائزه ست اشتر برای کسی که محمد علیه السلام را زنده و مرده بیاورد یا اعلان نمودن محمد علیه السلام مجبور شد تا سی روز را در غار ساور همراه با ابو بکر رضی الله عنه از چشم قرائش پنهان بگذارند. با متابعت حرکات رسول خدا قرائش به دهن غار سور رسیدن و آنجا استاده شدن و محمد علی سلام برای ابو بكر رضی الله عنه اطمینان میداد که خداوند با ماست و خداوند میفرماید. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأن بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر نصرت ندیت پیغمبرو چی باک است هر آینه نصرت داده است او را خدای تعالی آنگاه که بیرون کردنش کافران دووم دو کس آنگاه که این دو کس در غار بودن آنگاه که می گفت یار خود را غم مخور جگر مباش هر آینه خدا با ماست پس فرو فرستاد خدا تسکین خود را بر پیغمبر و قوت دادش بلشکر هایی که ندیده بود آن را و فروتر ساخت سخن کافران را و سخن خدا همان است بلند و خدا غالب درست کار است و در مدینه مرحله ای جدیدی از مراحل دعوت شروع شد حیبت و شوکت اسلام مستحکمتر آشکارا گردید. همان بود که در سال دوم هجرت مسلمانان در برابر قریش با شمشیر در غزوه بدر به مقابله مشرکین پرداختند و نصرت در این جنگ نصیب مسلمانان شد. هفتات تن از مشرکین کشته و هفتات تن در اسارت آمدند. بعد از این غزوه، غزوه احزاب واقع شد که خداوند مشرکین را در این غزوه توسط طوفان و دیگر لشکرهای خود حلاق ساخت و اموالشان به غنیمت مسلمانان درآمد. و به همین قسم پی در پی غزوات دیگری مثل حدیبیه خیبر و معتا رخ داد و اضافه از این غزوات لشکرکشی های با قمانده محمد صلی الله علیه وسلم صورت گرفت که آن را سریع میگویند و مکه مکرمه در سال 8 هجرت باده هزار مجاهد فتح گردید و مردم گروه گروه جماعت جماعت به اسلام داخل شدن شان و شوکت شرک و مشرکین سرنگون شده از بین رفت همه را شکستاندن قبرها را هموار سختن و در جزیره عرب تنها عبادت خدای یکتا و بدون شریک در قلبها مستقر شد و پیغمبر علیه سلام در سال دهم هجرت فریزه حج هج را ادا کرد و بعد از بازگشت سفر حج احساس مریضی میکرد و در منتصف شب همراه با ابو محیبه ببقیع رفت و به حق مردهای دعای رحمت و مغفرت میکرد و می گفت، سلام باشد بر شما ای اهل قبور، تهنیت باشد به حالی که شما قرار دارید، از آن حالی که مردم در آن قرار دارند، فتنه به مثل شب تیره و تاریک اقبال کرده، پی در پی دیگر ظهور نموده می رود، آخری آن بتر از اولی آن می باشد، پس از این دعا نزد ابو محیبه نزدیک شد و برایش گفت، ای پسر محیبه، برای من، کلیدهای تمام زخیره های دنیا و زندگی جاویدان داده شده و باز برایم جنت پیشنهاد گردیده و به اختیار یکی از این دو مخیر شدیم پس ابو محیبه گفت پدر و مادرم قربانت ای رسول الله علیه السلام کلیدهای خزائن دنیا زندگی جاویدان را بگیرید و بعد از آن جنت را اختیار نمایید رسول خدا علیه السلام گفت نخیر مرا به خدا قسم است ای پدر محیبه و به تحقیق من ملاقات پروردگاری خود و جنت را اختیار کردم بعد از آن محمد علیه السلام مریض شده و درجه حرارت وجود مبارکش زیاد بلند رفت و طلب پاشیدن هفت دور آب را بر تن مبارک خود کرد تا بتواند نزد مردم بیرون شده برایشان پیمان ببستد و آن را کردن تا خود مبارک علیه السلام گفت دیگر بس است و احساس تخفیف تب را می نمود آنگاه سر خود را بلند کرد و داخل مسجد شد و بر منبر نشست و خطاب مردم فرمود، لعنت خدا باشد بر یهود و نصارا آنانی که قبرهای پیامبرانشان را مساجد زاختند، حدیث متفق علیه و نیز فرمود، از قبر من معبد و بد نسازید که بغیر از خدا پرستش شود، و این یک نصیحت خاص بود که قبرها را مساجد نسازید و بعد از آن به بیرون شدن و اخراج یهودی ها و نصارا و مشرکان سرزمین جزیره عرب وسیعت کرد و در آخرین نصایح این بود که می گفت خدا خدا باشد نماز را ادا کنید آن چه به ایمانتان مربوط است قائم بسازید و به حرف زدن همین کلمات عشق مبارک می آمد و بعد از آن آخرین لحظات زندگی مبارکش آهسته آهسته نزدیک آمد و در خانه آیشه رضی الله عنه بود که عبد الرحمن پسر ابو بکر رضی الله عنه به خانه داخل شد و در دستش مسواق بود محمد علیه السلام طرف او دید آیشه رضی الله عنه فهمید که رسول خدا مسواق طلب دارد مسواق را گرفته نرم ساخت و به پیامبر اسلام علیه السلام داد و پیامبر علیه السلام مسواق را گرفته دهان برد وقت که از مسواق زدن متفرق شد دست و انگشت خود را بلند کرده طرف سقف یا چت خانه عمیق نگاه میکرد میدید و لبهای مبارکش حرکت میلمود آیشه با سکوت با محمد علیه سلام گوش میداد و محمد علیه سلام میگفت با آنان که برایشان اکرام کرده ای از پیغمبران و صدیقان و شهدا پروردگارا رفیق بزرگوارم خدایا رفیقی بزرگوارم پروردگارا برای من مخفرت و رحمت بفرست و من را برفیق بزرگوار بپیوست پروردگارا رفیقی بزرگوار و سی بار آن را تکرار کرد و این آخرین سخن وی علیه سلام بود پس از این دستش هموار شده و جان را به حق سپرد جان به حق داد و با تأکید آن وقت رسالت خود را ابلاغ کرده امانت را ادا و برای امت خود نصیحت نموده بود جان برفیق بزرگوار سپرد پس از آن که ما را گذاشت بفرموده خودش علیه سلام شما را بر دلیل روشن گذاشتم که شب آن مانند روز آن است. از آن را هیچ کس جز آن که حلاک شونده باشد کج و منحرف نمی شود. دین را خداوند او علیه سلام تکمیل ساخت و راه را او علیه سلام روشن کرد و عبادت کرد. تنها ذات پاک خود را وی علی سلام متحقق و ثابت ساخت. برافیق بزرگوار جان سپارید و تا هنگامی که روحش میبرامد محاربت و جنگ را بزد شرک و مشرکان می داشت. و لعنت میگفت به هر آن کسی که از قبرها مساجد می ساختن و می داشت که در دین آن که نیست اضافه و نو پیدا نکنید. آنگه میفرمید میفرمود کسی که کاری را بنماید که در آن دستور ما نباشد پس آن کار مردود است و نیز میفرمود هر چیز نوپیدار در دین گمراهی می باشد در هنگام به رفیق بزرگوار جان سپارید که به ستون دین وسیعت میکرد و می نماز نماز یعنی نماز را ادا کنید. و آنچه مربوط ایمانتان است انجام بدهید و قبل از این میفرمود پیمانی میان ما و آنها نماز است پس کسی که آن را ترک می به تحقیق که کافر شده می باشد ما شهادت و گواهی می دهیم که محمد علیه السلام پیغام و رسالت خود را به پایان رسانید و امانت را ادا و امت خود را نصیحت کرد و در راه خدا جهاد راستین نمود و ما را به سنت آشکارا و روشن و واضح فراخ وند و از آن را هیچ کس جز آن که حلاک شوینده باشد کج و منحرف نمی شود اشهد اللہ علیه علیه اشهد اللہ علیه ای برادر مسلمانم این خدای یکتا و یگانک ما را آفریده و روزی داده و بر ما احسان کرده پس حق خداوند بر ما چیست و واجب ما به نسبت خداوند و این حق است به جواب این سوال بیاید با من ای برادرم تدبر کنیم و به امق بیندیشیم آنچرا خدا و رسولش فرموده است خداوند میفرماید و ما خلقته الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين و نیا فریدم انس وجن را مگر برای اینکه بپرستند مرا نمیخواهند از ایشان رز و نمیخواهند که مرا تعامد دهند فراینده خدا همان است رزق دهنده خداوند توانا و زبور آور است و از معاز فرزند جبل روایت است میگوید هم جوار پیغمبر علی السلام بر مرکبی بودم پس او برایم گفت ای معاز آیا میدانی حق خداوند بر بندگانش چی است حق بندگانش نزد خداوند چی می باشد؟ گفتم خدا و رسولش داناتر است گفت علی السلام حق خداوند بر بندگانش آن است که خواست او را عبادت کنند و در عبادت او کسی را شریک نسازند. و حق بنده نزد آن است که عذاب نمیدهد آن که را که به او شریک نیاورد. گفتم ای پیغمبری خدا آیا مردم را مجدا ندهم؟ گفت نخیر مجدا ندهید که تنبلی میکنند. این حدیث از روایت امام بخاری و مسلم است متفق علیه است. این آیت فوق ذکر و حدیث شریف در محتوای خود معانی بزرگ دارد که انسان برای آن هدف آفریده شده است و آن عبارت است عبادت خداون نباشد به شرط که در عبادت وای شریک داخل نشود و نمانند وای در این عبادت با او منازع کند زندگی استوار نمی شود مگر در وجود یک معبود یکتا و دیگران انس و جن و باقی مخلوقات بندگان هستند و اگر بنده و مخلوق در حق این عبادت کوتاهی و تقصیر می کند مانند آن که چیز از عبادت را به غیر مستحقش می کند پس آن شخص پس آن شخص هرگز لذت و مزای مناجات با خداوند را احساس نمی کند و خداوند می فرماید فدعوه مخلصین له الدین پس یاد کنید خدا را یک جهت ساخته برای او عبادت را اگر چه ناخشنود دارند کافران مگر آیا عبادت تنها به شعار معروف اسلام مثل نماز، روزه، حج و غیره متوقف است؟ هرگز این تور نیست بلکه عبادت معنای شامل و کامل دارد که آن عبادت است اسم شامل و جامع هر را که خداون از آن راضی می شود از اقوال و اعمال ظاهر و باطن و این حقیقت متماثل در استقرار معنای عبادت عبادت خداوند در نفس انسان می شود، مانند آن که انسان شعوری در درون خود احساس نماید که پروردگار است و بنده و بس. پروردگار است که عبادت و پرستشش می شود و بنده است که عبادت می کند و غیر از این چیز دیگر نیست، پس در این وجود نیست مگر عابد و معبوده، پروردگار یکتا و همه بندگان او استند. و هر کار به توجه و سوی خدا در وجدان متمثل می شود و هر آن کار عذا و هر آن حرکت در زندگی توجه به طرف خداوند شده و از دیگر هر شعور خالی شود و تنها معنای عبادت به خداوند را دارا باشد و تنها خداوند مستحق و لایق عبادت کامل می باشد و دینداری پوره برای او است و او ذات پاک می باشد و به هیچ کائن هر کسی که باشد جایز نیست چیزی از این عبادت ها را اگر کم هم باشد بغیر خداون انجام بدهد و اگر انجام بدهد مرتکب گناهی بزرگی می شود که خداون آن را هرگز نمی بخشد برای آن که شرک به خداون آورده خداوند می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما هر آینه خداون نمی آموزد او را و خداون نمی آموزد که او را شریک مقرر کرده شود و می آموزد غیر از آن هر کی که خواهد و هر کی به خداون شرک ورزد هر آینه است گناهی بزرگی و آن وقت که عبادت خداوند لا شریک متحقق گردد، دیگر کسی غیر او عبادت نمی شود، و نم از مخلوقات کسی در عبادت او منازعه و جنگ می کند، آن وقت است که خدا انسان درک می کند در زندگی در این زمین که من خلق شده وظیفه بزرگ از طرف خداوند برای امداده شده، و آن آمدن انسان به زمین برای عبادت خداوند می باشد، که در این عمل، امید تمه غیر از اطاعت خداوند به چیز دیگر ندارد و پاداش این عمل خود را در راحت نفسی و رضایت حال و عمل خود مشاهده می کند و احساس دوستی و رضای خداوند و رعایتش را در خود ایجاد می سازد و در آخرت از نعمت های بزرگ و فضیلت بزرگ برخوردار می شود خداوند می الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون کسانی کی ایمان آوردن و نہ میختن ایمان خود را به شرک آن گروه ایشان راست امن و امان و ایشانن راه یافتگان وقتی که این را دانستید باید درک کنید که بزرگترین آنچه که لذت عبادت و تسلیمی به خدای خود اختیار آسمانها و زمین را میبرد صرف کردن عبادت یا انجام دادن عبادت به غیر خداوند است پس نیست سجده مگر به که همه آنچه در ها و زمین است به او سجده می کنید و تسلیمیت نیست مگر به آن ذاتی که همه وجود گردن تسلیمی را به او نهادند و نیست دعا مگر به آن کسی که دعای ناچار آن وقت که برای خدا دعا می کند اجابت کرده و بدی و مصیبت را از او دور میسازد. ای برادر مسلمانم قبل از اینکه که از شرق سخن زنیم خوش دارم از رحمت خداوند صحبت نمایم خداوند می فرماید و رحمتی وسعت کل شيء و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز را و پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید خداوند بسیار زیاد به توبه بنده خود وقتی که به او توبه می کند خوش می شود مثل آن کس شما که با مرکبش در یک دشت خشک روان باشد و از نزدشت این مرکبش فرار کرده و بر آن نان و آب او هم بار باشد و از برگشت او نامید گردد و تحت یک درخت آمده در سایه اش بخوابد و هر آینه از مرکب خود به تأکید مایس شود و او در این حالت باشد که ناگهان راحله و مرکبش بر سرش استاده شود پس از جلوه آن گرفته از خوشی زیاد بگوید اله تو بنده من و من پروردگار تو هستم. از بسیار خوشی سحوه و خطا شود. روایت مسلم است. هنگامی که به این اندازه مهربانی و رحمت خداوند بر ما باشد باید بدانیم که این رحمت شامل حال آنانی که شرک به خداوند نمی آورند. خداوند می فرماید ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هاروینا خدا نم آموزد که او را شریک مقرر کرده شود و می آموزد و می بخشد غیر از آن هر کس را که خواهد و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که اس پروردگاری خود روایت می کند ای فرزند آدم اگر گناه هایت به مانند کره زمین هم باشد و آن وقت که با من ملاقات کنی در آخرت و با من هیچ شریک نیاوری، من برای تو بمانند همین قدر زمین میامرزم. روایت ترمیزی حدیث صحیح است. هنگامی که این امر را درک کردید، به تأکید از شرک و حال مردم مشرکان از خداوند پناه میخواهید. پس آیا بندگان خداوند از این گناه به آمان مانده اند یا نه؟ برادر مسلمانم، اکثر مردم گمان دارند که در این گناه با امن و از این گناه بر امن و آمان هستند. غیر از این میبینیم که امام دین حنفیت و دوست خدا ابراهیم علیه السلام همه دشمنی هایش با قوم وی در مسائل شرک و مشرکین بود تا آن اندازهی که او علیه سلام را در آتش انداختن با وجود این همه در مقابل شرک و مشرکان مجاهدت کرد و بعد از یک جنگ طولانی و بزرگ از شرک و مشرکین حشداری می‌دهد خداوند با زبانش می فرماید و اجنوبنی و بنیه النعبد الاسلام و دوردار مرا و فرزندان مرا از آن که عبادت بطان را کنیم و اما پیغمبر علیه السلام که آخرین پیغمبران و بهترین نشان است و با آن که اصحاب خود را با بهترین قرون در عقیده صحیح تربیه نموده است باز هم از صدور شرک به خداوند بر آنها ترس و بیم دارد و می فرماید از آنچه که زیادتر بر شما خوف و بیم دارم شرک اصغر است از او سوال شد آن چی است؟ پس گفت علیه السلام آن ریا است روایت احمد با اسناد جید پس حال ما در این وقت چه باشد؟ آیا بعد از دعای ابراهیم علیه السلام و خوف پیغمبر علیه السلام بر ما؟ از مکر شیطان به امن می باشیم که ما را به تاریکی های شرک به خداوند بکشاند. دور نمی رویم. در عصر امروز ما انواع زیادی از شرک وجود دارد. از خدا برایت می طلبم ای برادر مسلمانم که در یکی از این شرک ها آلوده نشوید و از جمله آن کسانی باشید که به با دین که به این شرک گناه و معصیت خدا را کرد. قرآن از حال مشرکین مکه خبر می دهد که آنها می ما نعبدوهم إلا ليقربون الى الله ظلفا عبادت نمی کنیم ایشان را مگر برای آن که نزدیک سازد ما را به خدا در مرتبه قرب پس آنها عبادت خدا را می و به ربوبیت و اقرار دارند خداوند می فرماید ان لئن من خلق السماوات والأرض لا قلون الله و اگر سوال کنی از ایشان، از کافران، از مشرکین مکه، که کی آفریده آسمانها و زمینها را البته برایت بگویند که خدا آفریده. مگر آنها واسطه و وسیله های بین خدا و خ... گرفتند که به آنها دعا میکنند. مانند دعایشان به خداوند و از آنها کمک میخواهند. مانند که از خدا میخواهند. و نظر و زبح بر آنها میکنند قسم که به خداوند انجام میدهند. و بر آنها توکل می کنند مانند توکلشان بر خدا بلکه از آنها امید و ترس دارند مثل که از خداوند امید و خوف دارند خداوند میفرماید. فرماید و من الناس من يتخذ من دون الله اندد ينحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله و از مردم کسی هست که میگیرد به غیر از خدا همتایان را دوست می ایشان را مانند دوستی خدا آن وقت که این قسم عمل را یا کمی از آن را انجام دادن به شرک آلوده شدن تا آنکه خداوند محمد علیه سلام را برایشان فرستاد پس آنان که به محمد علیه السلام ایمان آوردن و به وحدانیت خداوند اقرار و تصدیق کردن و هیچ قسم از عبادت را بغیر از خداوند انجام ندهند آنان از جمله بندگان موحد خداوند هستند و آنان که بدین دین پدران خود ادامه دادن خداوند در حصه ایشان میفرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و ماواهن نار و من انصار هر آیه‌ای که کسی که شریک خدا را مقرر میکند حرام کرده از خدا به هیچ راه و جای او دوزخ است و نیستمگ ستمگران را هیچ هنده این بود حال مشرکان عرب در قدیم و حال مشرکان امروزی از حال آنها دور نیست و شما آنها را مشاهده می کنید که چی انداز زیاد عبادت خداوند را غیر او تعالی صرف می کنند می که نزد قبرها آمده غیر از خدا از آنها طلب کمک می و می گویند المدد المدد یا فلان یعنی کمک کنید کمک کنید ای مرده فلانی و در حالت ضرورتشان از آنها به غیر خدا کمک میخواهند و میگوین ای پیرم ای مرید ای بادارم با من در حل مشکلات و حاجاتم کمک کن و برخود نظر بسته می کنند که از خانه ام که اگر در خانه ام پسر پیدا شد باید برای فلانی ولی ذبح نمایم و آن وقت که خداوند این پسر را برایش نصیب می‌سازد، رفته شکر غیر خدا را می‌آورد و به قبر فلانی ولی تواف کرده، زبح می می‌کند. بدترین کار و بدترین حال این شخص است. و کسی که نزد قبر این اعمال را انجام می‌دهد، به این اندازه اکتفا نکرده و شیطان را راضی نمی‌سازد تا پسر آدم را در آتش مشاهده نکند. همان است که این پسر آدم یک قدم بیشتر به گمراهی جلو می دهد چرا که رازی نمی شود پسر آدم در آخر آتش باشد پس آغاز ترساندن وی را از ولی می کند که روزی دهنده و مستحق دوستی همین صاحب قبر فلانی ولی است و این شخص بسیار زیاد می و می که در حق این ولی کتاهی نکند و اندازه تملق و زلت و تسلیمی حش به اوج می رسد که تنها و تنها امید بولی می کند و بس پس هیچ فرق بین مشرکین مکه و احوال مشرکین امروز وجود ندارد مگر اینکه مشکین مشرکین مکه نزده بود که عبارت از یک مجسمه شخص صالح یا غیر صالح بود میرفتند. و امروز به قبرها و مزارهای اولیا میروند. و حاجات خود را از ها از آنها میطلبند. بر قبرهایشان مسح کرده به آنها امید دارند و از آنها می ترسن. و بعض از انواع عبادت را به آنان انجام میدهند، برادر مسلمانم همین که اکنون که در مورد قبور بحث کنیم بیایید ببینیم که در سنت مصطفی صلی الله علیه و سلام راجع به قبور و اهل قبور چی گذاشته. و ما امروز عده‌ای زیاتی از مسلمانان را مشاهده کنیم که در مسائل قبور راه گم شدن البته آن هم به سبب غفلت و دوری آنان نسبت به سنت رسول اکرم صلی علیه و وسلم است و می باشد پیانبر صلی علیه و وسلم مرده را دفن می کرد ولی قبرش را بلند نمی ساخت و یک سری قبر از دیگری فرق نمی داشت ولو اگر مرده از جمله بهترین و صالحترین مردم نیز می بود ببینید مصعب و حمز رضی اللہ عنهما و یا باقی صحابه کرام را بدون کدام فرق, تمی... فرق و تمیز با مسلمانان دیگر در یک مقبره دفن شدند رسول اکرم صلی الله علیه و از نهادن چیز یا نشانه بر قبرها که خلاف سنت و شریعت میبود بود و منع می نمود. چطور منو نمیکرد و آن حضرت صلی الله علیه و با علی رضی الله عنه وصیت میکند که هیچ را نگذارید مگر این که آن را نابود بسازید و قبر را بلند نگذارید مگر این که آن را هموار کنید این حدیث از روایت امام مسلم است. و هنگامی که ام سلمہ رضی الله عنها همسر پیامبر گرامی ما از کلیسایی که بنام نام ماریه یاد میشد و در سرزمین حبشه بود تذکر داد و گفت که آنها فوتوها و عکس در آن کنیسه آویخته بودند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنها قومی هستند که چون یک نفر صالح و نکشان وفات کند، بر قبر وی مسجد آباد می کنند. و فوتها را در آن نسب می کنند آنها ترین خلق نزد خداوند جل جلاله هستند از امام بخاری روایت شده بود رسول اکرم صلی الله علیه و در مورد در مورد هوشداری از عبادت قبرها و اجتناب برزیدن از آن به اندازه توجه و احتمام داشت که هنگام وفات و درد جان کندن و فراق نیز امت خیش را نصیحت و باز نمود و فرمود لعنت خدا بود بر یهود و نصارا آنان که قبرهای پیغمبرانشان را مساجد ساختن متفقن علیه حدیث و نیز فرموده الهی از قبر من معبت و بود نساز که بغیر, بغیر از خدا پرستش شود غضب و قهر خداون افضایش یافت بر آنان که قبور انبیای خود را مساجد ساختن این حدیث هم روایت از امام احمد است و حدیث صحیح هست. برادر مسلمانم، وقتی که آن را دانستید، پس باید نیز درک کنید که افعال و اعمال مردم نزد قبرها و زیارت آن بسی قسم تقسیم می شود. اول، کارها و اعمال مشروع و جایز. زیارت و دیدار قبرها خاطر تذکر آخرت و سلام گفتن بر اهل قبور دعا نمودن بدون این که ویجه جهت آن سفر صورت بگیرد جایز است. وبرای هر شخص هنگام داخل شدن به مقبره مشروعین است که بگوید السلام علیکم دار قوم المؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون یرحم الله المستقدمین منكم والمستأخرین نسأل الله لنا و لكم العافیه ترجمین ایناس سلام باشد برشما شما قوم مؤمنان و ما ان شاء الله اگر خدا خواسته بود با شما میپیوستیم خداوند به گذشتگان و آنانی که بعد از شما می آیند مغفرت کند از خداوند مسئلت می نمایم تا برای ما و شما عفیت نصیب کند بعد از این دعا می تواند به سوی قبری که می خواهد برود و بر وی سلام بگوید و برایش دعای مغفرت نماید دوم از جمله کارهای نو پیدا نزد قبور که صورت می گیرد و منافی توحید می باشد و احیاناً آن اعمال انسان را به شرک می کشاند مانند کسی که قصد عبادت وقت تقرب و نزدیکی به خداوند نزد قبر می رود یا مانند آن که بنیت ادای نماز یا تلاوت قرآن نزد قبر می رود و هدف اصلیش کسب رضای خداوند می باشد این همه چیزهای نوپیدا در دین است و منافی کمال توحید می باشد و از جمله چیزهای نوپیدا همچنان تبرک به قبرها است یا هدیه نمودن سواب کار نیک برای صاحب قبر مثلی کسی که سوره فاتحه را نزد قبر فلان قراءت و تلاوت می نماید تا سوابش برای او ثوابش را برای او ببخشد همچنان آبادی بر قبور جایز نیست که قبر بر دیگری بلند باشد و وصیت رسول علیه السلام نزد ما است که می فرماید و با علی رضی الله عنه وصیت میکند هیچ قبر را بلند نگذارید مگر این اینکه آن را هموار کنید و بر آبادی قبرها چیز و بر آبادی قبرها دیگر چیزهای اضافه میکنند مانند گچکاری یا چراغ دادن در آن در این باره محمد علیه السلام میفرماید خداوند لعنت گفته بر آن زنان که به زیارت قبور میروند و لعنت گفته بر آنان که بر قبرها مسجد ساختند پیغمبر علیه السلام نهی کرده که قبرها سمتکاری و گچکاری نشود روایت حدیث را امام مسلم کرده و از بزرگترین چیز نوپیده در دین که در زمان ما صورت آن است که بر قبرها مسجد ساخته در آن نماز میخوانند یا مرده را برای تعظیم او در مسجد دفن می کنند و تمام اهل علم اتفاق دارند که اگر بر قبر مسجد ساخته شد پس باید آن قبر و ایران شود و اگر مرده در مسجد دفن می شود باید قبر را باز کرده مرده را بکشند و دور از مسجد در مقبله مسلمانان آن را دفن کنند پس حجدار باش ای برادر مسلمانم که از جمله آنان نباشید که پیغمبر بر علیه السلام بر آنها گفته می فرماید بدترین مردم آنان است که قیامت بر آنها واقع می شود در حالی که آنها زنده می باشند و آنان که قبرها را مساجد می سازند این روایت حدیث را امام احمد می کند و بعد از این دو قسم مردم و حالشان با قبرها از قسم سیوم که آن قسم قیامت بزرگ و مصیبت عظیم است بحث میکنیم. سیوم و آن قسم که اده زیادی از مردم در حالی که دعوای اسلام دارن در آن واقع می شوند. و آن شرک است که منافی توحید کامل می باشد و آن عبارت از آن که بنده در عبادت خود چیزی را غیر خدا و اگر که کم هم باشد سرف میکند یا انجام میدهد بلکه آن عبادت را برای زیارت یا مزاری انجام میدهد مانند آنکه بگوید و دعا کند که ای فلانی برای من فرزن بدهید بعد از این دعا با صاحب این قبر رفته قربانی و زفحه میکند و یا احتیاج خود را یا مشکل خود را به صاحب قبر پیش میکند از جمله زن و زیفه و یا اولاد و غیره بلکه بعضشان دست بلند میکنند نه به اختیار آسمان ها و زمین مگر به این صاحب قبر بسیار ضعیف و ناتوان که هیچ چیزی از دستش نمیآید پس چطور مردم را چیزی عطا کند بعضی از جهال مردم نادان نزد قبر استاده شده دست های خود را بلند کرده میگویند کمک کن کمک کن ای صاحب قبر فلانی و خداوند میفرماید لا مثل اگر بخوانید ایشان را نشنوند خواندن شما را و اگر بر فرض بشنوند قبول نکنند گفته شما را و روز قیامت مرکر شوند شریک مقرر کردن شما را و خبر ندهد ترا هیچ کس مانند خدای دانا و جمله چیزهای نو پیدا آن است که ایده از مردم به نزد زیارت آمده پول و تلاهای خود را به داخل آن برای حفظ و نگهبانی یا برای عجر و ثواب می اندازند این حالت مردم به اندازه متوقف نمی شود که کم جلو رفته چار اطراف قبر تواف کرده برای قربت و نزدکی می میکنند. تا آن که قبر خدای خود و معبود خود میگردانند. تا آن که صاحب قبر را خدای خود و معبود خود میگردانند. خداوند ما را از شرشان نجات دهد. خداوند به حالشان میفرماید. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بيجو ايا خبر شمارا بانان كي زياد زيانكارانن از روی عملشان این جماعت آنانن که گم شده سعیشان در زندگانی دنیا و ایشان گمان میکنند که نکوکاری میکنند در عمل خود پس ای برادر مسلمانم و ای برادر موحدم این نصیحت کسی است که شما را دوست دارد و بر شما مهربانی و شفقت میکند پس شما را به خدا که نصیحت را رد نکنید شما را به خدا قسم است که نصیحت را رد نکنید ای برادر مسلمانم این قبرها بود و فعلا هم این قبرها وجود دارد و از جمله آنها صالحین هم است و یگدا ایشان هستند و بعضی این اصحاب قبور واهمین میباشند معنای واهمین این که هیچ حقیقت وجود ندارد دفنشان را در این ماکن ثابت بسازد و آن گروه ها قبرهایشان زیارت ها و لنگرها گرفته شده و مردم به نیات مختلف آنها را به نیات مختلف آنها را به بزرگی زیارت میکنند ایدایشان مال مردم را بدون حق میگیرند و بعضی ها با نیت خوب به بدی دچار میشوند و نجات از این شر ای برادر مسلمانم به پیروی از سنت پیغمبر علیه السلام حاصل می شود رسول علیه السلام با غیر خانه کعبه شریفه دیگر تواف نکرده و نه به آن امر نموده اگر تواف دیگری از غیر خانه کعبه روا می بود برای ما پیغمبر علیه السلام راهنمایی می کرد و آن حضرت علیه السلام را خداوند صفت می کند و می فرماید حریصون علیکم حریص است بر هدایت و رهنمائی شما پس آیا بعد از پیروی از سنت محمد علیه السلام و از سنت اصحابش اتباع سنت غیرشان را کنیم و از دستور غیر دستورشان در جستجو شویم پس اگر این را انجام دادیم هر آینه خیر بشر مبدل ساختیم پس حجدار باش که با وسوسه شیطان غیر کعبه با کدام قبر یا مزار تواف نکنید ولو اگر صاحب قبر دوست خدا ولی یا صحابی هم باشد بلکه حتی قبر محمد علیه السلام هم باشد تواف جایز نیست و همین که غیر از کعبه تواف نکردید و این التزام برایت کافیست و راستی که به خیر خلق و بهترین و داناترین مردم محمد صلی الله علیه و سلم انجام دهید و هشدار باشی برادر مسلمانم که به غیر از سه مسجد به دیگر مسجد اراده و قصد و تیاری سفر را نکنید پیغمبر علیه السلام میفرماید قصد سفر کردن را نکنید به سوی مساجد مگر سه مسجد مسجد حرام در مکه مسجد اقصا در فلسطین و مسجد من در مدینه یعنی مسجد پیغمبر علیه السلام در مدینه منوره حدیث متفق،, متفق علیه است و این است که شما بدینش هستید و از سنت او مطابقت میکنید پس شما را منم میسادد که به دیگر مساجد قصد سفر را کنید مگر آن مساجدی که در حدیث دکر شده است و نه قصد سفر کردن به زیارت ولی یا قبر فلانی را نمایید و در حالی که شما قول رسول خدا را شنیدید و کار دیگری که بسیار جای تعجب از در آن بعض مردم هستند که به اغوای شیطان وقتی که به این مزارها و زیارتها سفر کنند همراه با خود زبیه و قربانی و مال میگیرند که در صندوقهای خاص آن بیاندازند و آن مال را رأسا به دستهای آن زیارت تحویل میگردد که در بعض مردم آن را چندتا برای زیارت و ملنگان مشمارد. در حالی که آنان کسانی هستند که مال مردم را بناحق و بناروا می خورن ماننده که آنها مغفرت و رحمت صاحب قبر را برای مردم توضیح کنند مثل آن که صاحب قبر و محافظین آن در دستشان جنت دوزخ باشد، و ما از شر این گروه مردم پناه می خواهیم. پس توکل به آن زاد بکن که زنده هست و نمی میرد و در کار خود عزم و اراده قوی به کمک کسی بکن که هنگام دست بالا کردنت از تو حیا میکند و دست تو را خالی نمیگذارد و روی طرف کسی بگردان که شما را امر کرده تا به آن سو رو بگردانید و بدون واسطه و وسیله مستقیما سوال کنید و خداوند میفرماید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَتُونِ اسْتِفْسَار كُنَن تُرَا بَنَدَغَانِ عَلَيْهِ السَّلَام أَزْهَال مَنْ مَنْ بَصَّ هَر قبول میکنم دعای دعا کننده را وقت که دعا کند مرا پس باید که فرمان برداری من کنند و باید که بگرند من تا باشد راهیابان وقتی که همه راها بر شما بسته شد پس شما از آن کسانی باشید که میدانن غیر از خداوند به دیگر کسی رجوع نمیشود و او است که غم را دور و اندوه را مس همه می کند و کمک کننده بیچاره است که می اما امَن یجیب المفطر الى دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الاله هم مع الله قليلا ما کیست آن کی قبول میکند در مانده را چون بخواندنش و بردارد سختی ها را و بسازد شما را جانشین نخستیان در زمین آیا معبود دیگر هست با خدا برادر مسلمانم شاید حالا بگویید تمام ما آن کسی هستیم که دست‌های خود را به طرف خداوند بلند کرده وسیله و تقرب به دعا و قبول دعا می‌کنیم مگر باید آن طریقه مثالی را که خداوند و رسولش امر کرده بدانیم تا آنکه دعای ما مستجاب و وسیله ما روا نزد خداوند باشد بدانید برادر مسلمانم که توسل یا وسیله گشتاندن سه انوا دارد اول وسیله مشروع و جائز و آن وسیله به خداوند توسط نامهای حسنا و صفات علیای اومی شود مانند آن که بگویید خدایا من از شما سوال میکنم و شما خدای یکتا هستید که دیگر معبودی به حق غیر از شما وجود ندارد امید دارم که گناهایم را بیامرزید، دنیا و آخرت من را خوب و خوش سازید و جمله واسطه مشروع به خداوند دعا کردن به یک عمل و کار نیک است مانند آن سه کسانی که بر آنها سراخ بند شد پس یکی از آنها به خداوند سوال کرد و نیکی خود را بره به والدین را واسطه سخت و دومی اجتناب خود را از فحشا وسیله کرد و سومی عدل و انصاف و امانتداری خود را در وقت عطا واسطه پیش کرد پس خداوند دعای شان را استجابت نمود و سراخ را باز ساخت و آن به واسطه اعمال نیکشان بود دوم وسیله نوپیدا و آن وسیله کردن آن چه که در شریعت نیست مانند واسطه گشتاندن پیغمبران یا صالحین یا ولیان دوستان خدا که درجهشان یا حالشان را خداوند پیش میکنند میگوین خدایا من به تو با واسطه منزلت رسولی تو سوال میکنم یا با واسطه حرمتو حقش طلب میکنم و به این طور الفاظ ناروا و به این قسم دعا پیغمبر علیه السلام امر نکرده است اگر این کار مشروعیت داشت رسول علیه السلام ما را به آن امر و رهنمایی مینامود سوام توسل یا وسیله شرکی این قسم صاحبش را از ملت اسلام خارج کرده مرتکبش کافر می شود و آن صرف کردن عبادت بغیر خدا است انجام دادن یک عبادت غیر ذات الهی است و همچنان گرفتن مرده ها وسیله به عبادت خدا شرک است و این در ذات خود شرک بزرگ می باشد که مشرکان مکه مرتکب همین قسم شرک در وقت رسول علیه السلام میشدند و آنها میگفتند عبادت نمی کنیم ایشان را مگر برای آنکه نزدیک سازند ما را به خدا در مرتبه قرب ما نعبدهم الا لیقربونا الاله ذلفا پس آنها به عبادت خداوند نمی رسند مگر اینکه که مرده های خود را واسطه بگردانند و توسط آن وسیله ها به نزد خداوند نزدیک شوند و قربت حاصل کنند اما کسانی را که خداوند در این زمان گمراه کرده است می روند بر قبرها در عبادت خداوند وسیله می گردانند پس فرق بین آنها و بین مشرکان مکه نیست پس ای برادر مسلمانم آن صاحب قبر که جان به خالق خود داد و تقدیم کرد هر آنچه را که تقدیم کرد و او در قبر خیش مربوط به عمل خود است به خود نفع زرر رسانده نمی پس شما را به خدا قسم است که او به دیگران چطور فایده یا زرر برساند ای برادر مسلمانم آیا در این باره فکر کرده ای و به حال خود نظر انداختید که چه راه را اختیار خواهید کرد این است آن کسی که شما و دینش هستید پیامبر گرامی علیه السلام که درود و تسلیم بر او میگوید میفرماید آن وقت که بنی آدم میمرد عمل و کارش از دنیا قطع می شود مگر اسی چیز صدقه جاریه علم نافع و فرزند صالح و نیک که برایش دعای صالح می کند. پس چطور به نزد مرده میایید و از او می طلبیت هر حاجتی که باشد در حالی که او بیچاره به خود چیزی کرده نمیتواند ای برادر مسلمانم این آیه ذیل را با دقت تلاوت کنید که در آن شفا به این مرض است خداوند در حق کسانی که از مرده ها دعا می کنند می فرماید اى تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اگر بخانت انشان را نشنون خاندن شما را و اگر قبول نکنن گفته شما را و روز قيامت شریک مقرر کردن شما را و خبر دانا شاید بعضی مردم بگوید که هنگامی که من نزد قبر میروم یا بر قبر ولی مسح می کنم قصد تبرک به آن است ما برایش و توفیق خداوند می برکت از نعمدهای بزرگ خداوند است که آن را در بعضی مخلوقات خود خاص کرده است مگر مردم امروز و این عادت بشر است برای خود دو جهت را اختیار کرده اند یک ادهی مردم خشک مزاج در هیچ چیز برکت نیست و گروه دومیم از مردم ادعا دارند که بسیار چیزهای برکتی وجود دارد و بر اطراف خود مسهم میکنند که برکت است و بدون این که کدام دلیل آن را ثابت کند و این از نعمتهای خداوند است که به زبان نبی و رسول خود برای ما آنچه را که در آن برکت است و انجام دادن کاری را که رسول علیه السلام در آن برکت را بیان کرده است برای ما واضح و که بیان شده است و غیر از این دو دستور که قرآن و سنت است برکت را ثابت میکند دیگر برکت جایز و مشروع نمی باشد از جمله آن چیزی که در آن برکت است شب لیلت القدر می باشد وستی مسجدی که رسول علیه سلام آن را ذکر کرده مانند مسجد حرام در مکه مکرمه و مسجد نبوی در مدینه منوره و مسجد اقصا در فلسطین است البته برکت در نماز خواندن در این مساجد و در اجر سواب می باشد نادر در مسح دیورهایش یا در واضحهای این مساجد یا سنگهایش مگر تنها مس کردن در دو رکن کعبه که حجر اسود و رکن یمانی, یمانی است جایز می باشد و برکت دارد رسول خدا علیه السلام می نماز خواندن در مسجد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است غیر از مسجد حرام مکی مکرمه و از آنچه که برکت حاصل می شود آب زمزم است و رسول علیه السلام می فرماید در وصف آب زمزم که این آب مبارک است و غذای غزا، پرمزه و دوا،, دوا برای هر مریض است و هر کار نیک و مشروع و روا کار مبارک است مگر برکت در اشخاص غیر پیغمبران در زندگیشان نبوده و در رأس پیغمبران محمد علیه السلام و تبرک او در زندگیش جایز بود تبرک در آثارش مثل موی ببارک یا لباس و عرق مبارک علیه السلام مگر از این آثار در زمان ما چیز واقع نمانده است در باقی مردم تبرک جایز نیست ولو اگر صالحین و نیکوکاران هم باشند و این فیصله با اجماع صحابه کرام رضوان ردو ردو الله علیهم ذکر شده پس ای برادر مسلمانم حشدار باشید که مخالفت سنت رسول علیه السلام را نکنید نه کسی را که تخصیص بدهید غیر از آن که رسول علیه سلام در مسئله چیز نگفته باشد پس حجدار باش که دست کسی را مسح نکنید و از او برکت امید نداشته باشید و از کسی امید برکتی نداشته باشید و این کار را در حق ابو بکر و عمر رضی الله عنهما و دیگر صحابه صورت نگرفته پس چطور در حق کسی که منزلته و مقانتشون بسیار کم و پایین باشد صورت میگیرد و به این مناسبت باید بگوییم که مس کردن به سنگ یا خاک یا دیگر چیز جایز نیست و نه بوس کردن آنها روا باشد مگر آنچرا که محمد علیه السلام تخصیص داده باشد و پیغمبر علیه السلام ذکر اسنگ نکرده که در آن عبادت خداوند شود مگر تقبیل و مسحا یا اشاره کردن به دو سنگ دو سنگ جایز است یکی حجر اسود که در زاویه کعبه‌ی شریفه می باشد و دیگر سنگ رکن یمنی کعبه‌ی شریفه است و مسح بغیر از این درو کن به دیگر هیچ چیز جایز نمی باشد و آنچرا که بعض مردم انجام میدهند مانند مس کردن ستونهای یا مسجد یا دروازه های مسجد یا دیوارهای مسجد آن همه چیزهای نوپیدا در این دین است و لازم است از این چیزهای نوپیدای ناروا ما و شما اجتناب دورزیم البته آنها در ذات خود فایده و ضرر رسانده نمی و در این مناسبت عمر رضی الله عنه هنگامی که نزد حجر الاسود ایستاده شد و آن را بوسید گفت قسم به خداوند است که من میدانم که تو یک سنگ عادی هستی نه فوز و ضرر رسانده نمی توانی. و اگر رسول خدا تو را و اگر رسول خدا را نمیدیدم که تو را بوسه کند شما را ابدا بوسه نمیکردم. این خطاب عمر دیلانهو به سنگ حجر الاسود بود و از اینجا می که مسلمان صادق حجر الاسود و رکن یمنی ما... را بوسه نمی کند مگر بنیت قصد عبادت خداوند ای برادری مسلمانم در بعض از اوقات که خداوند آن را به فضیلت تخصیص داده برکت پایین می شود. و بهتر است برای انسان که در این اوقات اعمال و مشروع زیادی را انجام بدهد مانند ماه مبارک رمزان شب ليله القدر و ده روز ذلحجا و دهم روز محرم و سيوم حسين شب هر روز هاي جمعه و غير اوقاتي كه در آن دليل واضح آمده و اگر دليل واضح و سريحه ذکر نشود باشد بهتر است كه به آن عمل نشود خصوصا از چيزهاي نوپيدا كه در اين در دين باشد از جمله عيد مولود یا شب اسرا و معراج و شب نصف شعبان می باشد که مردم نادان این مناسبت ها را دائر می کنند که نه در آن حکم از خداون و نه از رسولش آمده است و این شبها را زنده صبح می کنند رسول علیه السلام هنگامی که دین کامل شد مشروعیت دو عید را اعلان کرد پس اینها دیگر عیدهاد را اضافه کردن و آن هم به اغوا و فریب شیطان می باشد خداوند میفرماید امروز کاملت لكم دینكم و اتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا امروز کامل ساختم برای شما دین شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و اختیار کردم برای شما دین اسلام را مگر آیا اهل این اعمال نوپیدا که شبها را زنده صبح می‌کردند مي میدانستند که این عبادت مشروع است و با این اندازه متوقف شده بودن نخیر، بلکه از اندازه‌ی تجاوز کردن، از اندازه تجاوز کردن و از این بزرگتر چیز را اختراع کردن که آن موسیقی و رقص و اختلاط بین زن و مرد و با هم بازی می‌کردند. در این شب خیزی ها اضافه شد. چیزهای نو پیدا میان آمد خداوند ما را از حال این مردم که دعوای محبت رسول علیه السلام را نیز دارن نجات بدهد در حقیقت آنها خلاف سنت رسول علیه السلام و خلاف اوامرش رفتار میکنند و او علیه السلام میفرماید پس هر کی از سنت من روگردان شد او از جمله امت من نیست در اسلام بغیر از دو عید که عید ادها و عید سعید فطر است دیگر عید وجود ندارد پس حجدار باش که مانند این نو عیدها، عیدهای غیر مشروع و نوپیدا اشتراک نکنید و اگر سهم گرفتید پس شما در چیز نوپیدای در دین صحیم شدید و بر آن کمک کردید و بدانید که آنچه را برای ما خداوند سنت کرده است کفایت است و از جمله دیگر عادات مردم که نو اختراک کردن رفتن به عمره در ماه رجب است حالان که عمره در این ماه کدام میزه و فضیلت خاصی ندارد و نه هیچ دلیل ذکر شده تا آن را ثابت کند و این عمل یک چیز نوپایده در دین است و عمره در اصل خود یک قربت و نزدیکی به خداوند می باشد که در ماه روزه آن نسبت به دیگر ماه ها بهتر است مگر به فضیلت ماه رجب هیچ دلیل ذکر نشده است برادر مسلمانم انسان مخلوق بسیار نتوان است و خداوند می فرماید و خلق الانسان و دعیفا. و آفریده شده انسان ناتوان و زیف شاید حالت شامل حال شود که ضرورت به رقیه شرعی یعنی به دم و دعا پیدا کند و به کسی محتاج شود که نزدش برود و محمد علیه السلام که بهترین خلق است اصحاب خود را دم و دعا کرده و جبرایل علیه السلام بر محمد علیه السلام دم و دعا نموده است پس به این اساس دم و دعا یک امر شرعی است که در آن عیبی وجود ندارد مگر برما لازم است که بعضی امور مربوط به این دم دعا را بدانیم اول جائز نیست که دم و دعا غیر از کلام خدا یا کلام رسول علیه السلام از دیگر چیز باشد یا از دعایی که در آن تجاوز به الفاظ شرکی نشود جواز دارد وقت صحابی از درد شکم خود به رسول علیه السلام شکایت کرد پس رسول علیه السلام برایش گفت دست خود را بر جایی که درد میکند بگذار و سی بار بسم الله بگو و هفت بار بگو اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاضر یعنی پنامی برم خداوند و بقدرتش از شر چی میابم و می شکایت و اندوه دارم و هنگامی که از فامیل محمد علیه السلام کسی مریض میشد شد بر او معوزتین را می یعنی قل بر برب الناس و قلعوذ بر بن فلق را می خوند و چف می کرد و این است مثال دم و دعای شرعی و جائز مگر دم و دعای ناروا غیر مشروع مثل الفاظ معنا و مربعات و خطکشی های غیر وارد و الفاظی که در آن شرکیات باشد این قسم دم و دعا جائز نیست مانند کسی که از یک انسان دم و دعا که می کند شفا بخواهد در حالی که شفا دهنده تنها و تنها خداوند است و بس یا به مکانات و جاه فلانی به خداوند دعا می کند که مریضم را شفا بدهید پس این طور دم و دعا جواز ندارد و به مریض فایده غیر از ضرر نمی رساند دوم باید کسی که برای دم و دعا می شود اقیده نکند که شفا به دست است که دم و دعا می کند بلکه شفا به دست خداوند می باشد و بس و کسی که دم و دعا می کند سبب از اسباب شفا است سوم لازم است ای برادر مسلمان وقتی که شما ضرورت به دم و دعا پیدا می کنید نزد شخص صالح و نیک که متمسک به کتاب و سنت باشد مراجعه نمایید و بهتر از آن مراجعه کردن به نزد شخص خودتان بر حال خود دم و دعای چهارم احتیاط کنید ای برادر مسلمان که نزد جادوگران فالبینان و تعویزگران برهای طلب حاجت یا طلب شفا نروید پس باید بدانید که جادوگران تا آن که به خدا کفر نیاورند جادوگر شده نمیتوانند و همجنان کافر میشوند با آنچی که بر محمد علیه السلام نازل شده پس او کافر به خداست و کارش کفر میباشد در رفتن نزد آنها گناهی کبیره است پیغمان علیه السلام میفرماید اجتناب بورزید از هفت محلکات و از آن جمله جادو را ذکر کرد خداون میفرماید ولا لا الصاحر حيث و و نمی نمیشود ساحر هر جا که رود فالبینا کفشناس ها ستاره ها آنانی هستند که ادعای علم غیب دارند و اعمالشان به مثل جادوگران باشد و هر کسی که علم غیب را ادعا میکند کافر است خداوند میفرماید قل لا یعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله بگوی محمد علیه السلام نمی دارد آن که در آسمانها و زمین است غیب را مگر خداوند پس اگر کسی نزد این گروه ها می و از او سوالی یا کاری را در آینده می کند مانند آن کسی است که از ولادت خود بپرسد آیا پسر است یا دختر یا از سفر خود بپرسد آیا فایده دارد یا زرر اینک حکم خدا در این مسئله را رسول علیه سلام بیان می کند هر کسی که نزد فالبین آمد و آنچه را که او برایش گفت تصدیق کرد به تحقیق که او کافر می شود به آنچه که بر محمد علیه سلام نازل شده است حدیث ابن ماجه و ابو داوود است دیگر جامعه فرماید کسی که نزد کفشناس و فالبین می رود و از او چیزی را می پرسد شب نمازش قبول نمی شود روایت حدیث را امام مسلم کرده است و هر وقت که قصد رفتن را به فالبین و کفشناس می کردید این دو حدیث را بیاد بیاورید در این دو حدیث پند و نصیحت بزرگی وجود دارد که برای یک شخص عاقل و صاحب قلب سلیم کافی می باشد آنچه مربوط بند کردن یا آویختن تعویز در گردن است اهل علم اختلاف دارند اده نوشتن قرآن را اجازه دادند و اکثریت کراهیت این کار را بینند و اگر نوشته غیر شرعی مانند الفاظ غیر مفهوم و غریب و خدکشی ها و مربعات باشد هرگز وجود ندارد هرگز جواز ندارد و در آن هیچ دلیلی ذکر نشده مانند بعضی مردم جاهل که در آینه موتر خود مهره را می‌بندند یا بود را در خلف یا مقدم موتر می‌بندند یا در حسایی از موتر خود جنده را بسته میکنند همچنان حلقه یا انگشتری را در دست میکنند و یا تارها را می‌بندند. در این همه گمان می‌کنند. که این چیزهای مذکور چشم زدن را دفع می کند. البته این تصرف از جهل به توحید و عقیده می باشد و نمیدانند که پیغمبر خدا علیه سلام گفته کسی که چیزی را به خود می بندند به آن حواله می شوند به آن سپرده می شوند و رسول علیه سلام در این مسئله که چطور خود را از, سر، از شر چشم زدن نجات بدهیم دعای معصوری برای ما گفته است اعوذ بی الله تام من كل شیطان و و من كل عین لام یعنی پنامی برم به کلمات خدا که کامل شده است از شر آن شیطان وهم هم افغانده و پنامی خواهم از شر آن چشمی که جمک کننده و زرک کننده است پس بعد از این پناه بردن به خدا انسان از بود و مهره و جنده پناه بخواهد اگر این کار را انجام بدهد پس به آن حواله می شود تا برایش نفی برساند یا از وای دفاع کند حالان که آن چیز به آن که اعتبار داده است فایده و دفاع کرده از او نمی‌تواند. پیغمبر علی سلام روزی در دست یکی از اشخاص حلقه زرد را گفت این چی است؟ گفت از وحانت تقنی باشد پس رسول علی سلام گفت آن را از دستت دور کن که شما را زلت می و اگر شما وفات کردید و این حلقه در دستان بود کامیاب و رستگار و این ش از حلقه ها و مهره ها برای محبت دوست و دوستی مرد زن و دوستی زن با مرد مانده می شود یا شویست های غیر شرعی از الفاظ بیمفهوم و خانبندی ها و مربعات که از قرآن و سنت نیست دوشته می و در داخل زرف پر آب مانده انرا بنیت شفا می نوشند آیا نمیدانند که در کردن این فعل پیامبر علیه السلام چی فرموده؟ فرموده هر آینه دم و دعای غیر شرعی و تعویز و شویست شرک است روایت حدیث را ابن ماجه و ابو داود میکند و هر آن از هدایات رسول اکرم علیه السلام با خبر باشد و بعد از آن در غیر آنج استجو میکند به تحقیق او راه گم شده و راه یابد و بالاخره به با های گمراهی میفتد برادر مسلمانم و چون به شما تذکر میدهیم که در هر حال به حدیث صحیح عمل کنید پس ما شما را به یک منبعی صاف و پاک راجع کردیم که آن آبی مزدار را از رسول اکرم علیه السلام طلب داریم و از دین خدا و احکام خداوند که شما توسط آن او را عبادت کنید آن را میجوییم پس واجب می شود بر شما که تسلیم و رازی شده و اطاعت مطلق به خداوند و رسولش داشته باشید خداوند میفرماید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما پس قسم بر پروردگار تو که ایشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کردن تو را در اختلافی که واقع شد میان ایشان بازنیابند در دل‌هایشان تنگی از آن چه حکم فرمودی و قبول کنند با قیاد. پس ایمان به خداوند حکم است از ایمان به او که معبود برحق و پروردگار می باشد و در حکم و امر خود شریک ندارد چون این یک امر مسلم است پس تشریعی که خداوند شرع کرده باشد یا تحاکم غیر شرع خدا صورت بگیرد و یا پیروی از غیر سنت رسول خدا شود یا در آن تبدیلی به دعوای آن که تقاضای وقت و مسئلات مردم است واقع شود به خداوند کفر آوردن است کسی که دعوای داشته باشد شخصی را وسعت علم است تا از شریعت خدا بیرون آید کافر می شود همچنان اگر کسی به غیر شریعت اسلام وفا داشته باشد یا جواز حکم غیر از آن که خداوند نازل کرده بدهد کافر می شود خداوند میفرماید و من لم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون و هرکی حکم نکند به آنچه فرو فرستاده است خدا پس ایشانند نامعتقدان کافران تمام تشریعات خداوند برای همه مردم فرستاده شده فرق بین عام و خاصه ایشان نیست نه فرقی بین علمشان عالمشان و جاهلشان می باشد همچنان شریعت شامل تمام به زندگی است در عبادات در معاملات احکام مفاصل را بیان میکند پس جواز ندارد که دین را از اقتصاد و یا از سیاست فصل کنیم پس بدانیم برادر مسلمان هراینه مسلمان راستین خداون را در توازن بشری و فطری خود عبادت و اگر این توازن را از دست داد در دامن شیطان میفتد و شیطان وای را راست و چپ دنبال خود میکشاند خداون می فرماید و انه هادا سراط مستقیمن فالتبعوه و خبر است که آنچه مذکور شده راه من است راست و درست آمده پس پیروی او کنید و پیروی مکنید راه دیگری را که این راهها جدا کند شما را از راه خدا پس اساس و اصول عبادت ای برادر مسلمانم دوستی خدا خوف و امید از خدا است پس بر ما واجب است تا خداوند را به محبت و دوستی عبادت کنیم از عذابش بترسیم از جنت و ثوابش امید داشته باشیم مانند آن قومهایی که عدول و تجاوز کردن در طرف خداوند را عبادت کردن و جانب دیگری را احمال کردن نباشیم و در آخر برای قومی را که خداوند وصف آن را کرده وصف آنها را کرده در کتاب خود پیش ما شما خداوند می فرماید و آنها از بهترین بندگان خداوند هستند يدعون عذابه ان عذاب آنان که ایشان را می پرسند کافران طلب می کنند به سوی پروردگار خیش قرب را که کدام یک از ایشان نزدیکتر باشد و توقع دارند رحمت او را و می ترسند از عذاب او هر آینه هست عذاب پروردگار تو ترسناک و خوفناک برادر مسلمانم این است شریعت الهی و این است دین اسلام همان دین که خداون اندرا برای ما و شما اختیار فرموده که به او تعالی نزدیک شویم و خداون تعالی دوست دارد که توری امر فرموده او را عبادت کنیم پس اگر تو ای برادر مسلمانم از جمله آنان هستی که می سمعنا و اطاعنا یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم و همین گمان ما در شما است انشاءالله پس این مجدها از طرف خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم برای شما تقدیم است خوشحال باش و مجده است برای تو که در دنیا زندگی سعادتمند را به سر میبرید چنانچه خداون فرموده من عمل صالحا من ذكر او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجذینهم اجرهم بی احسن ما کانو یعملون هر کسی که عمل صالح و نیک را انجام دهد ده چی مرد باشد یا زن و او مؤمن است پس او را زندگی خوب و سعادتمند سعادت من بخشیم و برایش اجر و پاداش را به صورت احسن از آن چی که کرده می دهیم برایت خوشها مجده و خوشخبری می دهیم که خداوند در وقت سختی و مشکلات همرای تو است پس خداوند را هنگامی آسودگی و آرامی یاد کن تا خداوند تعالی تو را در وقت شدت و سختی یاد کند و هنگامی که اجل تو نزدیک می شود پس برایت مجده است و خوشحال با, با وعده خداوند هنگامی که روحت از جسدت بیرون می شود دور بیرون می شود چون قطره آب از, از دهن هنگام نوشیدن بچکد و مجد است با وجود ملائکه رحمت که بالایت هنگام وفات فرو می آیند هر آین آنان که گفتن پر وردگار ما الله است سپس بر دین اسلام استوار و باقی ماندن برای اشان ملائکه رحمت فرو می آید و می گویند ترسید و خوف ما داشته باشید و اندوه مخورید خورید مجده بدهید به جنت و بهشتی که به شما وعده داده شده بود برایت مجده دهیم به وعده الهی هنگامی که در قبر نهاده می و با شما ودا و خداحافظی می شود آن وقت خداوند شما را هنگام سؤال ثابت قدم می ماند. سپس جای خود را در بهشت می بینید. پس ای مسلمانی که بر دین خدا استوار و قائم و با استقامت باقی مانده ای مجد از برایت خوشحال باش روزی که در سور یا اشبلاق دمیده می شود آن وقت همه بندگان بلرزه می آیند مگر مؤمنان و در قرآن کریم خداوند فرموده که آنها یعنی مؤمنان در آن روز در امن می باشند پس مجد از برایت با وعده الهی که سوال و حساب رابرتو در ستر و پنهانی و آسانی و سهولت انجام می‌دهد. دهد بر گناها و بدهایت سطر می کند بشارت و مجد است برای هنگامی که نزد, نزد حوض رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاده می و توسط دست مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آن حوض آب می پس بعد از آن هرگز تشنا نمی مجد است برای شما و مجذوبه هیت به هر کار خیر و بعد از آن خداوند بالای شما هرگز قهر نمی شود آن است که شما داخل بهشت می شوید سپس از دیدار آن ذات پاک سبحانه و تعالا بر خودار می شوید خداوند تعالی می فرماید مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خداوند به آنان است که انعام عطا فرموده بر آنان انبیا و صدقین یعنی راستگویان و شهدا و صالحان یعنی نیکوکاران و آنها بهترین رفاقت دارن پس ای برادری مسلمانم به خاطر خدا استوار باشید بر دین خدا و پابند باشید به با آن که خداوند امر فرموده و تو رکه انبیا و صالحان و نیکوکاران عمل میکردن شما نیز به آن پابند باشید و الله تا لقای دومی که در کسیت دیگری باشد شما را به خدا سپرده سلام الله علیکم و رحمته و برکاته برادر مسلمانم ما به انتظار نامه ها و استفسارات شما هستیم اگر هر سوالی داشته باشید لطفا آن را به آدرس ذیل فرستاده ما را ممنون سازید العنوان: المملكة السعودية الأربية القسيم بريدة بوسبكس رقم أصرف شاب ياك سفر ياك باردوم ياك ياك يعني ياك هزاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته